بخش سوم هی hey, شورلت نوا تازه اول چلچلی ماست هنوز خیلی مانده منو تو به روزهای بازنشستگی فکر کنیم. مادرجان از اولین میزینگگی های تهران بود و مثل یک مرغابی وحشی تو رو از ریزینگ شورلت ایران اول پیچش ایران شکار کرد. هنوز هم تو بهترین شفرولت نوای دنیا هستی و هیچ چار چرخی به گرد پایتو نمی رسد وقتش که بشود دست لیلا را می گیریم و با هم می رویم تار می رویم سویس می رویم سویس و باقی عمر من را مثل حالا و بیشتر از حالا به بیترفی میگذرانیم. گذرانیم الان زمستان است به این سادگیانه می شود رفت ویلای دماوند خودت که بهتر می دانی. جاده دماوند برفگیر است و خطرناک. میترسم توی جاده حالت بد بشود و ستایی وسط جاده زمینگیر شویم. راننده های نامرد گازش را میگیرند و پیچ های 90 درجه را با 90 کیلومتر سرعت میپیچند و به دستکان دادن های ما توجه نمی کنند. بگذار هوا کمی برگردد. میدان موتورتر را تر و تمیز بشویند و جلوبندیت را ردیف کنند آن وقت با لیلا می رویم بیلای دماوند سوئیس خودمان که خوشبختانه توی هیچ نقشه جغرافیایی اسمش نیامده است سوار تو از ویلا تا دریاچه تار 20 دقیقه بیشتر راه نیست از اتاق زیر شیروانی ویلا دوتا بطری لیکور از همون لیکورها که تا یلدای امسال نتوانسته بودم ازشان دل بکنم و پلمپشان را باز کنم بر و میرویم لب دریاچه تار ماهیگیری کاپوتت را بالا میدم تا کمی هوای پاک سوئیسی استنشاخ کنی و خودم با لیلا میروم لب آب لیلا ممکن است حبس کند من را حل بدهد توی آب چه دارد مگر من و تو چند تا لیلا داریم که آخر زمستان با او به سوئیس مخفیمان برویم بین خودمان باشد بعضی وقتها به تو حسودی میشود. می شود سالهایی که ایران نبودم و خیر سرم داشتم ینگه دنیا کالج و هنر میرفتم. جناب جنابالی هر هفته با مادر جان و دوستاش می آمدید ویلای دماوند حتما آن سالها خیلی به تو خوش میگذشته و دماوند خیلی خلوتتر از حالا بوده دروبر دریاچه تار پرنده هم پر و جان میداده برای شب نشینی های آخر هفته هرچه چه باشد آن بیلا سالهای سال کنج امن مادر و داشت برای شب نشینی و میز فکر و لیکو و فوش دادن به رژیم بوده حالا بهتر است سوئیس نام وجودمان را بگذاریم کنار کارهای مهمتری پیش رو داریم باید امشب سر قولم به لیلا بمانم و تو باید تا ساعت هفت نشده من را برسانی هتل البارز. مرکز شهر است، نزدیک است به کانون زبان، تره ترافیکم تمام شده. تو میتوانی بزنی دنده هوایی و درست جلو هتل البرز توی خیابان وسال فرود بیایی. امشب به هر ذر وزوری هست، باید مثل لیکورها پلمپم را باز کنم و با ندار رک و پوست کنده حرف بزنم. از همین حالا میدانم به این آسانی ها حرفم نمیآید آید. خجالت میکشم. با ندار رو دارم، ناسلامتی استادش هستم و بین من روابط استاد شاگردی برقرار است. به لیلا قول دادم با ندار حرف بزنم، پس من و تو چاری جز فرود استراری روبروی هتل البورس نداری قول میدم به نیم ساعت نکشد که گفتگویم را با ندا تمام کنم و طوری که دوزاری ندا بیفتد سر و تش را هم بیاورم و با هم بزنیم به چاک و برویم خانه لیلا تو را پشت پراید لیلا پارک می کنم و میروم بالا مموریت با موفقیت انجام شد خیالت راحت شد؟ لیلا دستش را روی قلبش می‌گذارد. و با آسودگی خاطر آهی میکشد و بعد از چند لحظه سکوت و لب گزیدن میآید روی پای من می و گونه را جلو می آورد و با دست میزند رویش روی یعنی بوسم کن. قربان چهل سالگی من بروم که چند مایز فکر می من و لیلا طفل دبستانی هستیم. حامد، پس می توانیم فردا صبح و کلاه کنیم و برویم بیرای دماوه؟ خیلی سرد است لیلا با تو گرم است حامد. هر هرچه تو بگویی لیلا حرف حرف توست و قول منبری ها سمعن و تاعتن می رویم ناموجودمان و من از غفصه یک کوچک ویلا رمان ودا با اسلحه را بر می دارم و دوباره و چند بار فصلی را می که سربان و کاترین پاروزنان عرض دریاچهی لوزان را می کنند تا از ایتالیا فرار کنند و به خاک سوئیس برسند و از جنگ جهانی کناره بگیرند. من هم سربان آمریکایی هستم و دریاچهی مثل دریاچه لوزان دارم. من هم کاترین دارم. من هم مثل سربان آمریکایی نمی دانم به خاطر چی می چنگم. پشت ویلا با می یک پیت حلبی را سوراخ می کنیم؟ بعد با زغال و الکل صنعتی زیر درخت گلابی آتش روشن میکنیم و پای آتش خوابمان میبرد خوشبختانه لیکور منگی و خماری سر صبح ندارد صبح زود سرحال از خواب بیدار میشویم بعد از صبحانه میروم روی بام شیروانی و برفهای باقیمانده را پارو میکنم لیلان آن پایین دارد چشم نگران مرا میپاید من برایش دستکان میدم و از غست برای آنکه که خودم را دست و پا چلوفتی نشان بدهم روی سفال ها سر میخورم و عین دلغک ها گیج و ویج از زیر کلاه که لیلا برایم بافته سرم را میخارانم لیلا از توی حیات ویلا داد میزند ای دست و پا چلفتی تا کار دست خودت و من نداده ای بیا پایین برفها خود به خود آب میشوند مگر خورشید به این بزرگی را بالای سرت نمیبینی شبرولت نوای عزیز تحقیق این سفر قشنگ به تو بستگی دارد باید الان که داری می رویم پیش ندا به من قبط قلب بدهی تا جلو ندا پلوم را باز کنم و چند کلم هم شده باش حرف بزنم به نظرت حالا انقدر جا افتاده هستم که کسی را با حرف مست کنم خودم فکر می کنم سبک تون تون دو استعاری حرف زدنم روی دیگران تأثیر مثبت می گذارد. و آدم های دوروبرم بیان که واقعاً حواسیشان باشد از سب که حرف زدنم تقلید می کند. بعضی وقتها به خودم می گویم نکند آنها وقتی با خودشان حرف می زنند باز هم شبیه منند وقتی با خودم حرف می زنم این دیگر خیلی وحشتناک است و با اینکه احتمال وقوعش خیلی بعید است خیالش هم من را یاد اکسهای واقعی قتل بزرگ می اندازد شفرولت سفید مدل هفتا هفت من و تو حالا میدان فاطمی هستیم و ساعت 20 دقیقه به هفت است. خیابان پایین میدان را برو پایین تا به بلوار کشاورز برسی و بعد بلوار را به پیچ دست راست به درخت های همقدر و یک شکل وسط بلوار نگاه کن و ببین شبیه درخت های نزدیک ویلا و دریاچه تار هستند یا نه hey, چرا من را داری به زور میکشانی هتل البرز نمیخواهم بیایم مگر زور است ای hey, آبران پیاده خیابان جویبار این شورولت آمریکایی من را خفت کرده و درهاشم هم از تو باز نمی‌شود شیشه هاش هم نمیآیند پایین تا بتوانم داد و فریاد بزنم شورولت توی روز روشن دارد من را میدزدد و میبرد هتل البرز تا من را به زور روبروی دختر دانشجویی که عاشقم شده بنشاند و دختره از من حرف بکشد من هتل البورس نمیخوام خود رشتکوه البورس را میخوام ویلای دماوند دریاچه تار هی شفرولته استکباری آمریکایی همین فردا میروم خیابان جردن و از تو به حافظ منافعمان شکایت میکنم کاردار سوئیس حافظ منافع ماست و شهروندان تهرانی را از گزند یانگی های آدم رو با حفاظت میکند. فکر کردی چی؟ من هم در قلب آمریکا بودم و تازه، همه خیابان‌ها و همه های نیویورک را از تو بهتر بلدم. تو اصلا میدانی روی پل خیابان 56 چشم چشمها را بستند و پای راست را روی گاز گذاشتن و تخت گاز به سمت لانگ آیلند رفتن یعنی چه؟ اگر همینجا من را نگهداری، میروم اتاق سفیر سوئیس و از شکایتم صرف نظر می کنم و ازش می خواهم در مجازات تخفیف قائل بشود. میدانی که شما دیگر توی مملکت ما مسئولیت غذایی ندارید. من نمیتوانم رو در روی ندا بنشینم. رویم نمی شود. مقصر اصلیم لیله است. از این به بعد باید گوشم نسبت به درخواست های غیر منطقی کر باشد. من کوه و دریاچه و ویلا می خواهم. من نگاه کردن به دماوند میخواهم میخواهم خیال کنم دارم به آلپ نگاه میکنم و اطراف لوزان مخفی هم سواری میکنم نه توی خیابان پرترافیک جویبار و پشت چراغ قرمز بلوار کشاورز آن شب که از خانه لیلا آمدیم بیرون در ورودی آپارتمان را که بستیم چراغ راه رو خود به خود روشن شد این نشانه خوبیست امشب لیلا هرچه بگوید میگویم به روی چشم نمی لیلا می لیلا میخواهد از حرف بزند. میدانستم ولی نه آن شکلی مثل اینکه چراغ راه رو دروغ گفته بود. پیاده روی آن شب این پیاده روی آدم های خواب گرد بود بکر، عاشق بیخبر همان بکارتش بود که کار دستم داد و منطقم را از کار انداخت حالا باید بروم ندارا ببینم و مود کنم هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است و همه چیز راه است سوه تفاهم کوچک و حل شدنی که سریعا مشمول مرور زمان می شود من بلوار کشاورز را دوست ندارم من بختیاریم یعنی مادر جانم بختیاری بوده من هم به او رفتم و حالا حوض کوچه یه کردم ماجرت به جای سردتر پیلای دماوند لیلا دوباره لیلا دوباره نیویورک و لانگ آیلند نکه کو کافه رودخانه بلوار کشاورزان هم تو این ترافیک دیگر چه سیغی است عزیز نه فقط به خاطر خودت حس زنانه میگوید این سامان از ندا خوشش آمده گل بگیرن حسهای زنانه را سامان نمیخوام فکر کنم اشتباهی روی سامان حساب کردم سامان تازگیا با من سرسنگین شده نمیدانم چه مرگش است نکند از ماجرای ندا برده و فکر کرده من جاییان که بیاید و رک و پوست کنده حرفش را بزند و از فکر در بیاید توی خودش می ریزد حتما تا حالا برای خودش زندگی نامی تراژیکی هم ساخته است. صاحبکار استاد کسافتم به دختری که دوستش دارم نظر دارد. احمق نشو پسر. شکلات تلخ سوئیسی ملکه خاکستری احمق نشو. من بیشتر از این حرفا روی تو حساب باز کردم. سامان تو شکلات ملکه ای. شکلات یا ما تلخ تلخ. دست خودت نیست. همه ی با استعداد این تلخیه تو را دارند تو باید بعد از بازنشستگی من آتولیه ملکی خاکستری را سر پا نگه داری شکلات اورجینال سوئیسی تو این چند ماه از آنقدر توانایی و صداقت دیدم که کلید آتولیه و خانم را دست تو بدهم و خودم بروم پی کار و زندگیم و ماه به ماه هم به آتولیه سر نزنم و مطمئن باشم همه چیز رو به راه است تو به من مدیونی پسر من به تو یاد دادم توی عکسات تهران را چجوری ببینی شاید بگوی تهران در تو بود قبول اما این شهر توی خونه همه تهرانیا هست ولی چرا همه از خون و خون ریزی می ترسند؟ باید یکی بیاید و نتایج آزمایش خونشان را نشانشان بدهد تا ببینند درصد تهران از درصد گلبله های سفید خونشان هم بیشتر است؟ و این تهران است که دارد از بدنشان در مقابل انواع بیماری ها دفاع می کند اینکه این بروی مرکز احتای خون و خون بدهی و بعد از یک ماه برگی آزمایش بیاید دم در خانتان و بفهمی که سر و کله داروی بیماری های روانی در خونتو پیدا شده پس تو هم به من شک نکن مثل لیلا که به من شک نکرد فکر کردی خودم وقتی آن شب دور میز مافیا بازی می کردیم یا سر کلاس های کانون؟ نمیفهمیدم فهمیدم ندا توی چه حالی است؟ اشتباه هم فقط این بود که خودم را به آن راه زدم به لیلا همین را گفتم پس دیگر نباید خودت را به آن راه بزنی من نمی خواهم خودم را به آن راه بزنم به همین خاطر بود که امروز بعد از نهار به ندا زنگ زدم و باهاش برای ساعت هفت قرار گذاشتم اما انگار این ملاقات به هزار دلیل که 999 داش را نمیدانم نشدنی است آن یکی هم که میدانم این است که خجالتیم و دلم میخواهد همان استاد ساده ندا در کانون زبان باقی بمانم کاش سر کلاس عین همه تیچرها بودم و ریدینگ خارج از کتاب برای شاگردها نمیخواندم رایتینگ بچه ها را تصیح می کردم و فرق تلفظ امریکن و بریتیش را بهشان گویستد می کردم. نه اینکه از نیویورک و هنر جهانی و عکاسی و هزار درد بی درمان دیگر حرف بزنم و سر به هواشان کنم. شفرولت قراصه حرف نشنا. اگر فقط یک متر دیگر من را جلو ببری دیگر نه من نه تو. میبرمد توی خیابان سیوسف بوم روبروی آتالیه ملکه ی خاکستری پارکت میکنم و مثل همه ی ماشین هایی که سالهای سال از توی کوچه پس کوچه های تهران به حال خودشان رها شده ولت بلت میکنم تا خاک بخوری و دل دست ها لاستیک هات را بدزدند و موتورات را پایین بیاورند اصلا هم خم ببرونه میاورم که روزگاری من و توچ جاهایی که با هم نرفتیم بچه خیابان سیوسف بوم میآیند و روی ر لطفاً مرا بشویید ندا نباید وقتی سوار ماشین لیدا به خانه برمیگشت گشت با لیلا حرف میزد. این جوان ها چه می دانند بی احتیاطی یعنی چی و چه عواقبی دارد یا تو احچن انداختن یک آدم از همه جا خبر به چه جاهایی ختم می شود شبرالت عزیز لطفا من را دو چهار گریزه از مرکز کن گریزه از تهران ولی نه خیلی دور فقط پنج هزار و و هفتاد و سه متر بالاتر از سطح دریا دماوند و الا قسم میخورم دیگر به صدای موتورت گوش ندهم باتریت هم که تمام شد آب باتریت رو عوض نکنم و بروم یک خودرو ملی به نام سمن بخرم و به سمن بگویم امریکایی ها حقدشان برداشته با این ماشین ساختنشان و باید بیایند از ایران خودرو ماشین ساختن یاد بگیرند چه چراغ اقب قشنگی، چه موتور ردیف و ای؟ باورت نمیشود. حالا ببین کاری نکن از دنده لج بلند شب امکان وقت حسابت با کرامل کاتبین است من که نباید بنزین توی باکت را بردارم و روی آتش بیهدیاتی عاطفی یک دختر بریزم تو هم که حالا فلسطین را ای توی بلوار و گوشت به دهکار زرزرهای من نیست اگر کوتاه بیایی و حاضر شوی بروی سمت میدان وصر زبطت را روشن می کنم و از پشت صندلی عقب یک نوار جاز قدیمی توپ پیدا می کنم. من به یاد روزهای خوش و و پارک مرکزی و تو به یاد وطنت با هم به صدای چارلی پارکر و ری چارلز گوش می دهیم. تاسه فقط به جاز ختم نمی شود. از میدان واصل می رویم سمت میدان هفته تیر، و بعد میپیچیم توی روزولت سابق. پایین تر سمت چپ روبروی ورزشگاه دیواری بلند و آجری می بینی که رویش سیمخاردار خاردار کشیدند. خیابان تلهگانی یک طرفه است. می رویم پایین در و از خیابان سمیه دوباره میاییم توی تلهگانی. شاید یادت رفته باشد وان دیوارهای آجری برایت چندان آشنا نباشد می بینی که دیوار خیلی طولانی است. تا چشم کار میکند دیوار است روبروی در بزرگ نگه میدارم و تو اقاب سنگی میبینی که روی دیوار کنده شده و دیگر خطوط ظریف کندکاری شده را از دست داده ولی هنوز هم می شود تشخیص داد که اقاب است آنجا سفارتخانه سابق توست شفرولت نوا نزدیکترین جا به وطنت خاموشت میکنم و یکی دو ساعت می میگذارم و خودم میروم خانه هنرمندان که همان نزدیکی است باید سالهای کدکیت را به یاد بیاوری سه سالت بیشتر نبود که این سفارتخانه دیگر جزیری آمریکایی در دل تهران نبود از دیوارهاش بالا رفتند و بعدن شد لانه جاسوسی باید خوب به پرچم هایی که دور تا دور دیوارها زدن توجه کنی یا زهراها و یا حسینها یعنی که اینجا امریکا نیست ریپ بزن، ترمز ببر، هر کاری خاستی بکن من اونجا کاری با تو ندارم خانت نیست ولی خاطره دور خانت که هست خوشحال نشدی شبرولت؟ بالاخره تو به گردن من حق داری مادرم با تو من را می مدرسه روزهای انقلاب با تو می رفتیم ویلای تا از خطرات احتمالی انقلاب مسون بمانیم موقع موشک باز باز هم تو بودی که ما را میرسندی ویلای دماوند مادر جان سوار تو من و لیلا را از سیل دربند نجات داد دند اتومات من هیچ وقت تو را با خود روی ملی تاخت نمیزنم ولی به لاستیک که قسمت میدم و التماس میکنم که نپیچی توی خیابان وسال ترمزدستی کنار خیابان روبروی برش سامان پارک میکنم بورش های سامان امروز چرا همه چیز نمادین شده از ماشین پیاده می شدم. سر و صورتم اسابی عرق کرده و پشتی صندلی ام وسط زمستان خیس عرق شده هوا تاریک تاریک است باید فکر کنم میروم روی کاپوت می نشینم کاپوت داغ داغ است هوا تاریک شده و الا می توانستم از اینجا کوه های البرز را ببینم البرز جنوبی توچال کاپوت داغ داغ است هی hey, اینجا را ببین ای hey, دل خافل من داشتم از ملکی خاکستری یوسف آباد پشت به شمال شهر رو رو به جنوب می آمدم از شمال دور می شدم و حالا که دارم رو به غرب پیش میروم، دیدن شمال برای ممکن شده این خیلی خوب است نکنات میخواستی همین رو به من بگویی با زبان بی زبانی می شمال تهران را به من حالی کنی؟ نباید اینقدر بیتهابی می و چرت و پرت می بافتم تا اینکه مثل حالا فرمان تو در جهتی به چرخت که بدوانم کوهای شمالی را ببینم بیان که لازم باشد به پشت سر برگردم خودت که بهتر از من می دانی. سمت شمال برای من یعنی درست فکر کردن منطق من در تهران یعنی شمال شهر کوهای شمالی را میبینم و فکری درست به مغزم خطور میکند چطور این فرمول قدیمی را فراموش کرده بودم این شمال است رهایی بخش است و من داشتم میرفتم جنوب شبرالت من از اصلیترین اصل زندگیم دور افتاده بودم و تو میخواستی منها به اصل خودم بازگردانی من و تو باید همیشه رو به البرز جنوبی باشیم تا روحمان سفید سفید شود و بفهمیم باید چه کار کنیم دشت زنبغ و دشت هویج و دشت آفتابگردان یادت هست؟ این همه دشت درندشت دوربر سویس ناموجود من بود و من به خاطر همهشان پشت کرده بودم یک لحظه تصور کن که تو از بفثانه ی من هستی و من سوار یک کتازه تو داریم دوان دوان میتازیم سمت شمال رو به ترین شمال البرز جنوبی ویلای دماوند ویلایی نزدیک دریاچه داریم و برای یک عکاس چی بهتر از این چی بهتر از این برای موتور هشت سیلندر تو تو من را وادار کردی که از حرف زدن دست بردارم و برای یک دقیقه به احترام البرز جنوبی یعنی همین کوههای شمال تهران که تاریک شدند سکوت کنم. حالا افکارم نظم گرفتند. شیخل روح. داشتم تو را عین کابوی‌ها چهارنعل می‌تازاندم بیان که بدانم تو زبان بسته فرمول قدیمی من را میدانی و لازم است بعضی وقتها که فراموشش می‌کنم به من یادآوری کنی. تا یکی دو ساعت دیگر که با ندا حرف بزنم تو میفهمی که این کلان در کابای به ظاهر خشن زیر ستاره‌ی حلبی‌اش قلبی است طلا دارد. اگر بخواهی دو تایی و بدون لیلا رویم بیلای دماوند در ساعت ها هم گاهی وقتها لازم است تنها باشیم. تردیدی وجود ندارد. من دیگر آن عکاس زرنگ دو دره باز نیستم که هرچی به نفعش نیست می پیچاند امشب کار سخت صحبت با ندار را انجام میدم تا به تو ثابت کنم قلبی از طلا دارم تلای ناب 24 ایار